سلام شبتون بخیرم هر جا که جاکی سالم و سرحال و خوشنود و شاید باشین چیزی که اکثرمون همشه دنبالش میگرده چیزی که شاید با پول هم درست میشه بدون پول هم مهیا میشه امشب چیزی که مد نظرم هست و میخوام در رابطه با اون صحبت کنم براتون خیلی مهمه امشب در رابطه با فاهشگی میخوام صحبت کنم در رابطه با جیر شدن درابطه با ذهن رو به اختیار دادن در با وسط میدون ویل شدن درابطه با نبودن درابطه با باختن به ذات وقتی از مادر زاده میشیم میگن که روح پاک میاد جلوتر بزرگ میشی یه دورانی رو طی میکنیم و همون روح پاک رو خیلی راحت میتونی یهک بکشی و با خودت جلو ببری. چه هایی هست لادتون باشه بحث فاهشگیه میبینی آدم آدمایی رو که باید فرق دارن تو باش فرق داری نمودشون رفتارهاشون باید فرق داره به چه شکلی مثلا بود تو گیلایفه شهری که من توش زندگی میکردم بودن آدمایی که خیلی راحت عنوام میکردن که آقا من گی هستم حالا اون میگفت گی هستم من قبولش نداشتم علتم داشتم برای خودم و با همه سیکس میکرد ولی حتی اول اینو میپذیرفت که با همه سیکس میکنن اینو میپذیرفت که با همه بازی میکنه اینو میپذیرفت که خیلی راحت تابه هیچ تعهد نیست فاحشه بودی جورایی گفتم دوباره میگم و اینو میپسند می قبول می ربول میکرد که فاهشه هستش کلمه فاهشه چیز بدی نیست بد شده خدمت داره میکنم با آدمایی که در مقابل فاحشن فاهشه یه طرفه وجود نداره همون شخص که با فاهشه هم میفتونم می دونم همون گی لایف شهری که من توش زندگی می کردم و برای خودش فاهشه هایی داشت از ما بین گی ها و میتونستن خیلی راحت اونوان کنن که میتونن با هر کسی باشن و تعهد نداشته باشن شرفشون مروتشون به خیلی از اونایی که اونوان میکنن گی هستن و فقط برای تو هستن خیلی بیشترم بحث من بحث امروز و بحث دیروز واقعی نیست بحث من مال بحث دو سال پیشم از دوستانی که بی خیال بذار خود سری کنم فرهاد توی کل رابطهش اندازه سر سوزن برای من کم نذاشته اندازه سر سوزن برای من کم نذاشته دوباره میگم فرهاد توی رابطهش برای من اندازه سر سوزن کم نذاشته برام داداش کوچیک بوده برام خواهر بوده برام برادر بوده برام گاهی پدر گاهی مادر بوده بوده و از همه مهمتر فرهاد بوده ولی بعضی چیزا هستش یدنه لیوان بیارم ولی بعضی چیز هستش آدم رو خیلی ناراحت میکنم بحث از اونایی میزنم که ادعا کردن همه چیز هستن ولی توهی هم نبودند توهی باز یه مقداره یعنی وقتی میگی توهی یه مقداری هستش ولی این آدم مقدارم نبودند هیچی نبودند یاد باشه بحث این اون بحث فاهنشگیه من موقعی که دو سال پیشم بود یعنی دو سال پیش رما بودم و دو سال پیش خودم رو شناخته بودم خیلی راحتتر حداقل قبول می کردم که اون چیزی رو که دارم رو بتونم با کل دنیا پیش ببرم ولی وقتی صحبت از رابط هایی میشه که بر میگرده به تو سال پیش خیلی جا کم میارم. بحث ببینیم بحث امروز نیست من. بحث امروز رو اجازه نمیدم هیچکی توش تخالتی داشته باشه بحث امروز بحث من و فرهاده بحث دیروزه و بحث امشبمونم بحث فاحشگیه. به نظر من خب مشکلاتی پیش میاد بین من و فرهاد فرهاد وقتی بحثی بین منو پیش میاد و نمیتونیم راه ببریم اون بحث رو و با هم واقعا دوچار مشکل میشیم باید یه چیز رو در نظر بگیره باید بگه روما حلال نمی کنم اون آدمایی که روحت رو فاحشه کردن اون آدمایی که خیلی راحت اومدن نمنه نوعی این من یه نفرم خیلی پاکتر و, پاکتر و سمیمیتر از منها وجود داشته تو این جامعه که آدمای خیلی بند و کدری که جلوی پای من سبز شدن، جلوی پای همون آدما سبز شدن و گفتن که باهاتون هستیم و این و این و این و این و از این حرفا ولی هیچ وقت اینو به یاد نداشتن که دارن روح ها که یک نفر رو فاحشه می کنن و فاهشگی روح خیلی باتر از فاهشگی تنه تو روحت رو بفروشی تنت رو می ولی تنت رو بفروشی روحت رو نفروشی همیشه در عذابی امشب یکم می بحث رو شخصی کنم سخن روم با اون آدمایی که خودشون میدونن دونن کیا هستن و گوش می سعی نکنین از من هیچ وقت طلب بخشش بکنین چون منم ببخشم شخصی مثل فرهاد نمیبخشه شما رو چون فرهاد خیلی راحت بگم وقتی صحبت از کرده ها و انجام ها میرسه یعنی مثلا یه اتفاقی افتاده و من دارم یه کاری برای فرهاد انجام میدم بهم حرف میزنه میگه آخرما وقتی از گذشتهاش میگفتی برای من میدیدم که چقدر اونها رو دوست داشتی و برای اون انجام دادی و برای من انجام نمیدی باید بگم که اون حلالیت رو باید از فرهادا بطلبین نه از من شما مدیون آینده من هستین. شما مدیون روح من هستین. شما خطچه دار کردین. شما روح پاک من رو که هیچ کی رو نمیتونست تو خودش به قبولونه رو فاحشه کردین. من روحم رو باختم به شما. من روحم رو به گفته ها و قول های شما باختم. من نوعی رو میگم. خیلی ها اینطوری هستم من نمیدونم چند درصد از بچههایی که اینو گوش میدن فقط به خاطر اینکه قبول کردن حرف پارتنرشون رو الان موقعیتشون فروردره آخه تویی که ادعات میشه خیلی بزرگی نه یا جلو مجبور که نیستی تویی که غرور داری نه یا جلو مجبور که نیستی عشق و عاشقی که غرور حالیش نمیشه نه یا جلو مجبور که نیستی خب نه یا الان بچرخ تا بچرخیم بکش تا بکشیم روح من فاهشه تا هم کسیم مغزت فاهشه به قول اون یکی گفتنی فاهشگی فکر و مغز بدتر از فاحشگی تنت وقتی که تنت رو میفروشی فقط تنته ولی وقتی که مغزت رو میفروشی خیلی چیز رو میفروشی عقیدت رو آرمانت رو چرا در گفتی؟ چرا باعث شدی؟ الان به کسی که صد برابر تو دوستش دارم نتونم بهش واقعا اون چیزی باشم که میخوام چرا؟ چرا فکر میکردی که لایقم هستی؟ گفتم نوعی من هستش ولی میشه تعمیم دادین گفتگو رو هیچ وقت اون آدمایی رو که باعث فاحشگی روح من شدن نخواهم بخشید هیچ وقت چون خودم رو میتونم توی فاحشگی تن قرار بدم خودم خودم رو ولی فاحشگی روح و هرزگی روح هیچ چیز دیگه است که افراد دیگه این رو به تو ممنونم ازشون به یه هدیه میارن و میدن و میمونم. این آدمها ادعا هستن این آدم تبل تو خالی هستن از اول آخرشون پیداست ولی خب ما که نمیدونیم به هر نفیه زیاد نمیخوام بحث رو پرسونال و شخصی بکنم ولی هیچ وقت نخواهم بخشید اون آدمایی رو که با بازی روی کاراکتر من با بازی روی نقاط ضعف من خواستن تا اونی که میخوان و در دست داشته باشن و بعد از اینکه یه جورایی تحریکات مغزی خودشون رو آروم کردن از من دست کشیدن باعث شدن که روحی که پاک بود خط دار بشن شما مدیون من نیستید مدیون فرهاد ها هستید نیاتون باشه تو است که بحث خیلی شخصی شد چون مخاطبه خاص داشت ولی یه جورایی خب شاید می همیشه شاد باشین همیشه عزیز باشین یه دونه آهنگ ببینم اگه بخونه مال کنان هستش میخوام براتون بذارم از اون نخون بذاریم چیزی دیگه میخونه براتون رپری که من دوستش دارم نه اینم نمیذارم نشد هیچی نشد بله بله. از اون کامل آدمایی که تقریبا میکنن، از اون بچههایی که حتاقاً به صداهام گوش میدن، هرچند شاید نتونه تطمیعشون کنه، ممنونم که هستن. دوستشون دارم. فرهاد رو ول نخواهم کرد و خیلی دوستش دارم. خیلی دوستش دارم. خیلی دوستش دارم. ممنون که هستش. و به هم میرسونه که پیشم هستش این خیلی مهمه که انماش رو دارم و روحش پاکه مثل بعضی ها روح نداره یا مثل خود من دوستتون دارم